سلام بکنم خدمت همه دوستان من عنوانی که فرمودن تجربه نیست تجربه ای برای ای که متوازانه تر باشه چون کار من یک کار تحقیقی گسترده مبتنی بر مورد کاوی بسی به من و در نتیجه یک کار تحقیقی نیست تجربه شخصی از کارهایی که حدود سی ساله درگیرش هستیم و تو ده سال اخیر حالا به طور بنابراین میشه گفت تجربه ای در آموزش مبتنی بر انگیزش و میزان علمی بودنش رو من اطلاعی ندارم بنابراین من قضل رو بر این بگذارید که دارم یک داستان تعریف میکنم دیگه اضافت و برداشت به خودتون اون فعالیتی که امروز قصد دارم عمدتن راجلش صحبت کنم برای که معرفی کنم یه مقدمه لازمه مقدمهش اینه که سال گذشته سال ۹۴ اتفاقی افتاد در ایران که سرمنشه شروع یک حرکت بینوملالی بود چیزی شبیه جایزه نوبل همینطور که در جهان جوایز بزرگ علمی وجود داره که به پیشتارزان علم در روزهای مختلف داده میشه ایران بنیانگذار جایزه ای شد بین المللی در روزهای کشورهای اسلامی برای دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان فرق نمیکنه اما در روزهای کشورهای اسلامی به این جایزه اسمش از جایزه مصطفی به نام عزت پیامبر هست که ا خیلی بزرگی داره و بناس که در هر ای که دو سال یک بار برگزار میشه به چهار دانشمند بزرگ جهان اهدا بشه که سال گذشته در دی اولین دورش برگزار شده و دانشمندان دانشمندانی هم که حقیقه ایرانی بینشون نبود خب این جایزه مستفا یک NGO او که یه سری واقف هم داره که جایزه رو تامین می‌کنه خب تیم این جایزه، گروه سیاستگزارش تصمیم گرفتند که یک هاشیه و یک رویداد دانش آموزی داشته باشند طوری که جایزه ای که در لبه علم موضوعیت داره و به دانشمندان برتری در جهان اهدا میشه بتونه هیاهوی دانش آموزی داشته باشه آثرش که واضحه که چقدر بتونه زیاد باشه از اونجا که گروه ما یعنی گروه فناموز ام قریب به 3 ده هست که تا حدی تجاربی میداریم در خصوص کار کردن با دانش آموزان ما رو شناسایی کردن و ما رو مأمور کردن که این رویداد دانش آموزی رو تعریف کنیم ما هم آمدیم یک مسابقه تعریف کردیم چقدر شیرین بود صحبت‌های خواهرمون در خصوص جان به و چقدر شیرین بود صحبت‌های عوض سناموز دیگه به بچه‌رم دخترمون ناراحت میشن احتمال دیگه فاله. جناب دکتر که راجبه شهر ریاضیه دادم من خیلی مشوق شدم خیلی لذت بردم و حتما از درگاهشون هر دو کمک فهم خواست برای حوزه کاری خودم. ما در فنااموز برای ترویج علم می‌کنی مثلا برنامه تلویزیونی چیستا رو اگر دیده باشید، پای فنااموز که در کشور راه اندازی شده که حدود دو میلیون دانش آموز بازدید کننده در 8 سال گذشته داشتیم این فاقیت دانش آموزی باعث شد که جایزه مستقا از ما به خاک رویداد دانش آموزی ویژهی تعریف کنیم که باعث تحرک در دانش آموزان بشه ما هم به مناسبت اینکه سال گذشته سال جهانی نور بود اطلاع دارید سال 2015 از سوی یونسکو سال جهانی نور اعلام شده بود اون هم دلیلش بزرگ داشته ابن حیسم بود هزاره تعلیف کتاب المناظر بود سال 2015 برای تکریم این دانشمند مسلمان یونسکو 2015 هزاره تعریف کتاب المناظر ابن حیسم را سال جهانی نور اعلام کرد به همینجا اطمال برای حفظ این تناسل آمدیم مسابقه ی تعلیف کردن بین دانش آموزان تحت عنوان مسابقه دانش آموزی نور ابن حیسم از آوان تا بهمن ادامه داشت هم که خط گزارش بده مسابقه دانش آموزی نور ابن و مسابقه نور ابن هیثم و حالا معلومه ابن هیثم است کوچیکش نور بود که خونه واقعا از شهلا می کرد که خب حالا این مسابقه دانش آموزی نور ابن هیثم چی بود فراخوانی دادیم که دانش آموزان عزیز از ابتدایی تا دبیرستان بیایید در حوزه نور اپتیک فوتونیک هندسی موجی حجتی کارپورت ها، فناوری علوم پایه، تبریز، آزمایش بیایید یک فیلم علمی یک دقیقهی درست کنید و آمار اینجوری بود که در چهار ماه که این مسابقه ادامه داشت ده هزار دانش آموز شرکت کردند، هزار فیلم تولید شد توسط دانش آموزان ایرانی چون من اطمئنم که آخرش برای من دست نخواهی زد برای هزار دانش آموز دست بذاریدید که مسابقات کوبر و باریش به حال ما حدا شد کوبر رو دیدن. که 1600 فیلم دانش آموزان ما ساختن از شهرها و رؤسای مختلفی کشور. داستان هایی که بعضی داوران ما ما 8 تا داور داشتیم، بعضی داوران ما در هنگام دیدن این فیلم ها اشک می از شدت شوق که این بچه چه کار کردن. دیویز فیلم برتر رو هم مورد تشویق قرار دادیم ما که مجری بونیم، فن موجود مجری بود در واقع مورد تشفیق جایزه مصرف قرار گرفتن از عزیزان هم که واحد فرمان خواهش میکنم که کلیپ کلیپ شماره یک رو پخش کنم این کلیپ برگرفته تکای بلیده بلیده کوتاهی از بعضی از آثار دانش بوزنیم تو بینرم یکی نیاده mă vorând la o رسولوی دانش آموزی نور ابن ایسر اردیبهشت 95 واقعاً که این عزیزان ما شایسته تشویق هنری شما هستند. از کنم که با این بچه‌ها چیکار کردید؟ چقدر مطلب الی رو به طور مستقیم بهشون یاد دادید؟ چقدر به کلاس دعوتشون اولشون کردید؟ چقدر نمره برایشون مهم بود؟ چقدر کتاب به چنده چقدر افلاده ما هیچ هیچ کاری نکردیم فقط راهنمایی کردیم اونها رو اونا روستا تنها، کاری که شد انگیزه برایشون ایجاد شد این انگیزه جایزه بود جایزه کمترین که انگیزه شد و از اون بالاتر وعده دیده شدن کار شما به همه بران به همه ها گفتیم 200 گروه رو روانه بلوار بعد تاشیر می‌کنیم به طور خاص هدیه داده میشه بله همه بچه که فیلم فرستادن فیلمهاشون رو روی سایت به طور دائم قرار سایت جایزه مصطفا مصطفاPrize.org مجری هم که فن آموزه فن آموز.ای آقا از هر دو می شدن روی سایت مصابقه آثارشون رو الان داره آماده میشه برای گذاشته شدن چون اختتامیه اخیرا برگزار شد همه این فیلم ها رو میشه ازش استفاده کرد سعی میکنون زیرنگیسه انگلیسی هم کنیم تا جهانیان بدونن که ارمغان دانش آموزان ایران به جهانیان معلمین به دانش آموزان چه بود تا باشد که ببینیم ارمغان دانشمندان ایران در آینده برای جهان چه خواهد بود این انگیزش در واقع مثل تفاوت این از راه انگیزه وارد بشین بیا از راه زور تفاوت حل دادن یک ماشین در یک مسیر سخت در موتور خاموش با روشن کردن موتور اون ماشین من خواهش می‌کنم که فیلم شماره 3 رو چقدر وقت داریم؟ خب دیگه وقتی دی نداریم من می می‌کنم و با دیدن فیلم شماره 3 برنامه علایزبنده خاتمه پیدا خیلی